در برمی هزار افسان می‌خویم به اتفاق شما به سرزمین سربستان بریم. و از دنیای پر رمز و راز افسانه‌های مردمان سربستان افسانه برجی میان زمین و آسمان رو براتون من نقل کنم. این افسانه برگرفته از کتاب افسانه‌های سربستان گردآوری دوک استانوویچ کاراپیچه با ترجمه از مهین راتپور. در سزمین سربستان روزگاری پادشاهی بود که سه پسر و یک دختر داشت. پسرها آزادانه زندگی می و به هر جا که دلشون می خواست می اما دختر در اتاقی که حتی جلوی پنجره هم میله آهنی داشت نگهداری می شد. چرا که پادشاه علاقه خاصی به تنها دخترش داشت و می کرسید که به اون آسیبی وارد بشه. روزها گذشت و بالاخره یه روز دختر از پدرش اجازه خواست تا به همراه سه برادرش در باغ قصد گردش کنه و پادشاه هم اجازه این کار رو داد اما هنوز دختر پاش رو توی باغ نگذاشته بود که یه دفعه یه مار بالدار از آسمون رسید و در مقابل چشمهای سه تا برادر دختر رو برداشت و به آسمون بود برادرها با ناراحتی فورا نزد پدرشون بریشتن و اونچه رو که دیده بودن برای پدر حکایت کردن و با قاطعیت گفتن پدر ما حاضریم برای نجات تنها خواهرمون به اون سر دنیا هم بریم پدر در حالی که عشق میریخ رو کرد به سه پسرش و گفت من به هر کدوم از شما یه با تمام لوازم سفر میدم تو هرچه زودتر برید و خواهرتون تنها دختر منو با خودتون و وگرنه من از قصده میکنم پسرها پدرشون رو دلداری دادن که به زودی همراه خواهرشون بر میگردن. دل پادشا کمی آروم گرفت و پسرها آماده شدند تا صبح زود سفرشون رو آغاز کنند پسرها صبح زود به راه افتادند رفتن و رفتن تا اینکه چشمشون به برج بلندی افتاد که بین زمین و آسمون بود برادر بزرگتر نگاهی به بلندی برج انداخت و گفت یعنی yani, یعنی yani ممکن خواهرمون توی این برج بلند باشه برادر وسطی گفت حسم میگه که خواهرمون باید اینجا باشه و برادر کوچکتر با نگاه بلندی برج رو اندازه گرفت و گفت باید هر جوری شده خودمون رو به بالای این برج برسونیم سه برادر به جنب جوش افتادن بلکه راهی برای بالا رفتن از برج پیدا کنند. بعد از مدتی گفتگو تصمیم گرفتن یکی از اصپا رو بکشن و از پوست اون کمربند بلندی درست کنن بعد یه سری کمربند رو به تیر ببندن و تیر رو در کمون بذارن و به طرف دیوار برج پرتاب کنن تا تیر به دیوار برج فرو بره و یه سر کمربند به برج وصل بشه و سر دیگه اون آزاد باشه که یکی از برادر رو بتونه به وسیله اون خودش رو به بالای برج برسه. برادر کوچیکتر گفت: خب یکی از ما باید اسبش رو بکشه. برادر وسطی از دوتا برادر دیگه کمی فاصله گرفت و به طرف اسبش رفت و گفت: من که نمیاد نمی‌رسم رو بکشم. و بعد دستی بر یال‌های های اسفش کشید و ادامه داد و گفت اصلا وظیفه برادر بزرگتری که اسبش رو برای نجات خواهرمون فدا کنه برادر بزرگتر با شنیدن این حرف چشک به برادر وسطی این و گفت چه وظیفه؟ مگه ما با هم چه فرقی داریم؟ این قضیه ربطی به سن و سال ما نداره من اصلا دوست ندارم اسبم رو از دست بدم حراسه برادر بزرگتر و برادر وسطی اونقدر با هم بگو مگو کردن که برادر کوچیکتر اونا رو به آرامش و سکوت دعوت کرد و با لحن آروم گفت الان وقت این جراب احسانی است باش معلوم شما اصفتون رو بیشتر از جون خواهرمون دوست دارین دو برادر یک صدا با اعتراض گفتن نه نه نه اصلا اینطور نیست به بعد به برادر کوچیکتر نزدیک شدن و اصلا چرا خود تو عصبت رو نمیکشی ها برادر كوچیکتر پوستخندی زد و گفت من حاضرم جونم رو هم برای نجات خواهرم از دست بدم اسب که چیزی نیست همین الان اسبم رو فدای جون خواهرم میکنم و بعد سر اسبش رو برید و از پوست اون کمربند بلندی درست کرد و همونطوری که قرار گذاشته بودن یه سر اون رو به دیوار برج وصل کردن کمربند که به دیواره برج وصل شد باز هم بحث و جدل برادرها شروع شد که چه کسی باید از این بند بالا بره و خودشو به برج برسونه باز هم برادر بزرگتر و برادر وسطی زیر بار این کار نرفتن و هر کدوم بهانه‌ای آوردن و برادر کوچکتر که با قاطعیت اعلام کرد که باشه باشه باشه باشه, باشه, باشه رو بحث نکنیم من خودم از این بند بالا و در عرض چند دقیقه برادر کوچکتر خودشو به بالاگ برج رسند و از پنجره وارد اتاقی شد از اون اتاق به اتاق دیگه رفت و همینطور رفت تا به اتاقی رسید که مار بالدار در گوشه ای از اون به خواب رفته بود و خواهرش در حال باد زدن مار بالدار بود دختر همین که چشش به برادر کوچکترش افتاد با صدایی آهسته به اون التماس کرد و گفت برادر باشه، میکنم من زودتر از اینجا برو. برادر کوچیکتر به خواهرش نزدیک‌تر شد و به آرومی گفت: خواهر عزیز، نگران نباش، من اومدم تو رو نجات بدم. دختر با نگرانی گفت: نه، نه، نه، خودت تو به خطر ننداز. اما برادر کوچیکتر حاضر نبود خواهرش رو تنها بذاره. بنابراین به آرومی و با احتیاط جلو رفت و در یه چشم هم زدن شمشیرش رو از قلاف بیرون کشید و محکم به سر مار بالدار زد مار حتی بیدار هم نشد این بار پسر با قوتی بیشتری به مار بالدار زرد زد مار بالدار خوابالود به دختر گفت باد بزن باد بزن انگاه یه پشه سرم رود گزیده خوز سرم پسر خواست برای سومین بار شمشیرش رو به سر مار بالدار بکوبه که خواهرش با اشاره شکم مار بالدار رو نشونش داد و پسر با تمام قوت شمشیر رو توی شکم مار بالدار فرو کرد و مار بالدار جا به جا بعد از کشه شدن مار بالدار توسط برادر کوچکتر، خواهر دست برادرش را گرفت و با هم به تماشای اتاقهای برج رفتند. در اتاق اول کنار آخر اسب سیاه بالداری بود که یراغش از نقره ناب ساخته شده بود. تو اتاق دوم اسب سفید بالداری که یراغی از طلای ناب داشت کنار آخر ایستاده بود. و در اتاق سوم اسب زیبای خاکستری رنگی بود که یراقش با سنگ‌های قیمت آراسته شده بود. دختر همونطوری که دست برادرش رو در دست داشت اونو به اتاقی برد که دختر جوون و زیبایی با نخ طلایی در حال گلدوزی بود. برادر و خواهر از اونجا به اتاق دیگه‌ای رفتن که دختری با نخ طلایی در حال پارچه بافی بود. و بالاخره به اتاقی رسیدن که دختر زیبایی سرگرم به نخ کشیدن مروارید بود جلوی دختر جوان توی سینی طلایی یه مرغ و چند تا جوجه تلایی مشغول نکزدن و خوردن مرواریدها ها بودن همون جا بود که برادر کوچیکتر یه دل نه دل عاشق دختر جوان شد برادر و خواهر بعد از تماشای همه این عجایب دوباره به همون اتاقی که مار بالدار در اون کشه شده بود برگشتن و مار بالدار رو از زمین برداشتن و از پنجره به پایین برج انداختن. برادر بزرگتر و برادر وسطی که در پایین برج به انتظار برادر کوچیکشون ایستاده بودن همین که چشمشون به مار بالدار افتاد از ترس شروع کردند به لرزیدن و خودشون رو از برج کنار کشیدن. برادر کوچیکتر اول خواهرش و بعد سه دختر جوون رو با وسایل کارشون به پایین برج فرستاد و بونا گفت شما آروم و با احتیاط پایین برین. منم به محض اینکه که پاتون به زمین رسید دنبال شما میام و بعد با خودش فکر کرد وقتی رفتم پایین حتما به برادرام میگم قصد دارم با دختری که مروارید به بند میگشید استواج کنم با این فکر حس خوشایندی توی وجود برادر کوچکتر پدیدار شد چند دقیقه بعد خواهر و سه دختر به پایین برج رسیدن اما دو برادر یعنی برادر بزرگتر و برادر وسطی که حسادت وجودشون رو پر کرده بود و شرمنده بودن که اونا نتونسته بودن خواهرشون رو نجات بدن با بیرحمی تموم کمربند رو بریدن و برادر کوچکترشون رو بالای برج تنها گذاشتن و برادر کوچکتر نتونست از برج پایین بیا دو برادر بعد از بریدن کمربن برای فریب پدرشون و مردم پسر چوپانی رو که بسیار شبیه برادر کوچکشون بود پیدا کردند و لباس مناسب و ای کنش کردند و اونو به جای برادر کوچکشون به قصد بردن و خواهرشون و سه دختر رو تهدید کردند که اگه در این بار حرفی یا کلامی به زبون بیارن اونا رو هم نابود میکنن خواهرشون و ستو دختر جوون از ترس غور دادن که در این باره به کسی حرفی نزنن و اما و اما بشنوید از برادر کوچیکتر برادر کوچکتر، مدتی تنها توی برج موند تا اینکه روزی از صدای های کلیسا و رفت آمدهای مردم متوجه شد که دو برادرش و پسر چوپان میخوان با سه دختر جوون این که اون نجاتشون داده بود عروسی کنه. برادر کوچیکتر از برجنسی برادرش دلش شکست و از این کار ناجوان مردانی اونها عصبانی و ناراحت شد و تصمیم گرفت هر طور شده جلوی عروسی اونها رو بگیره. سوار بر اسب سیاه بالدار شد و درست موقعی که برادر بزرگ و عروس با مهمونه از کلیسا بیرون میومدن به طرف اونا پرواز کرد در یه چشم هم زدن با ضربه شمشیر برادرش رو به طوری که کشه نشه از اسب به زمین انداخت و دوباره به برش برش بعد وقتی که برادر وسطی میخواست عروسی کنه برادر کوچیک سفار اسب سفید بالداری شد و درست موقعی که داماد و همراه عروس و مهمونا از کلیسا بیرون میومدن به طرف برادرش پرواز کرد و برادرش رو از اسب به زمین انداخت و مثل برق از اونجا دور شد نااخوس های کلیسا شروع به نواختن کردند و هم همه ها بالا گرفت هر کسی چیزی می و برادر وسطی به همراه عروسش حاج و واج میون مهمونا ایستاده بودن و به خط پرواز اسب سفید بالدار چشم بوخت بالاخره روز عروسی پسر چوپون با دختری که مورد علاقه برادر کوچیک‌تر بود فرار رسید. این بار برادر کوچیک‌تر سوار بر اسب خاکستری رنگ شد و همین که داماد و عروس به همراه مهمونا از کلیسا بیرون آمدند، با شمشیر زربه‌ای به سر داماد یا همون شاهزادی دروغین زد و اونو از اسب بر زمین انداخت. اما برادر کوچکتر این بار خیال برگشتن به برج نداشت و دور سر مهمونا میچرخید. مهمونا به طرف برادر کوچیتر حمله کردند تا اونو بگیرن اما دستشون به اون نمیرسید. بالاخره برادر کوچکتر با صدای محکم و رسا گفت: گوش, گوش, گوش کنین، گوش, گوش کنین. تمام مهمونا با شنیدن صدای برادر کوچکتر در بر سر جاهاشون آروم گرفتن و با تعجب و ناباوری به اون نگاه میکردند. برادر کوچکتر گفت من؟ من شاهزاده هستم پسر کوچک پادشاه برادر وسطی با صدای بلند و رسا گفت دروغه دروغه اون برادر ما نیست مهمون ها هاج و هاج مونده بودن و با تردید به پسر چوپان و شاهزاده کوچک نگاه می کند شاهزاده گفت ای مردم به حرفهای من خوب گوش کنین دو برادر من از حسادت من و توی برج زندانی کردند تا نجات تنها خواهرمون رو به حساب خودشون بذارن در این موقع پادشاه ها رو کنار زد و به شاهزاده جوان نزدیک شد و با دقت از سر تا پای اون برانداز کرد و متوجه شد که این پسر جوان همون پسر کوچیک خودش شاهزاده جوان جلوتر رفت و پدرش رو در آغوش کشید و پادشاه بلا فاصله دستور داد دو پسر بیرحمش رو از اون سرزمین بیرون کنند بعد جشن عروسی مفصلی برای شاهزادی کوچک و دختر مرد علاقش برپا کرد و چون پی به شجاعت و مردانگی پسر کوچکش برده بود اونو جانشین خودش معرفی کرد. افسانه برجی میان زمین و آسمان رو از سرزمینه سربستان براتون نقل کردم افسانه ها نه فقط حکایتی بازگو شده از هزاران سال قبل بلکه روایت زندگی روزمره پویایی مداوم و حرکت به افسانه ها شکل زنده و فعال داده و به اونها رمز و راز جذابیت و در این حال سادگی و روانی بخشیده هزار افسان کار مشترکی است از نویسنده و سردبیر زینت صالح پور ویراستار افسانه قربانزاده اجرا مهران دوستی صدا بردار. ازخر زعماری تیه کننده زهرا عبدالله زاده تا افثانه دیگر بدرود